امشب برای پسرک قدری کتاب میخوانیم. امشب به درد دلهای کودکانه پسرک می رسیم. دلش میخواهد یک مجموعه بزرگ تمر داشته باشد دلش میخواهد یک مجموعه دار واقعی تمر باشد از دوستی شنیده است که این کار چقدر لذت بخش است میگویم که راست میگوید. در دنیا شاید کاری دلنشینتر و سرگرم کننده تر از مجموعه داری تمر وجود نداشته باشد از همین فردا کار را شروع می کنیم فردا می برمش پیش آقای عباس باغری که بهترین شاگرد آقای فرحبخش بزرگترین تمرشناس ایران است آقای باقری می گوید کار را درست و دقیق شروع کنید تمر است که هرگز قیمتش پایین نمی آید. به شرط آنکه که کار نگه داشتن تمرها را درست و دقیق انجام بدهید پسرک سخت خوشحال است از شادی بند پوتینهایش باز مانده از شادی روی پایش بند نیست. امشب با پسرک یک دست چترنج میزنم. امشب مدتی را صرف مادر میکنیم. امشب مثل همه شب چیزهایی را جابجا جا می کنیم چیزهایی را برق میاندازیم. این گلدان سفال را اگر ممکن است برای مدتی از اینجا بردار و پنهان کن. در فضا جا انداخته. وقتی برش می‌دارم که تمیزش کنم جایش به رنگ روشن در فضا می‌ماند امشب من رختها را در حمام می‌شویم می تو پیراهنم را اتو می‌کنی و دکمه افتاده سراستین چپم را می‌دوزی میدانی کجا افتاده بله بانون توی جیب راست شلوارم است مگر من جرأت می‌کنم اجازه بدهم دکمه‌ای از لباسم جدا شود و گم و گور شود امشب بعد از همه کارها می نشینم به خطاطی نمی شود میدانی که نمی شود بدون یک هنر یا حتی خرد هنر بدون یک صنعت دستی ساده زندگی را به شیرینی گذراند از بانویی خواهش کردم که هفته یک ساعت برای تدریس سنتور به تو به خانمان بیاید حوصله اش را ندارم وقتش را هم ندارم متاسفم بانوی آذری من قرار ما این است. یک جا من از تو اطاعت می کنم، یک جا تو از من. اوقات فراغتمان را باید به گونه ای مقبول و با هر چیز که بتوان از آن اطر و صدای عشق را احساس کرد پر کنیم. پس تار یا ستار؟ من آشق های آذربایجان هستم. حرفی نیست. جمعه به دیدن بهروز دولت آبادی آشق می رویم. اصل، این عشق نیست که نرم نرمک عقب مینشیند. این بیکارگی است که پیوسته حجوم میآورد. بیکارگی، کاهلی، بی خستگی، خستگی،بحان جویی، کهنگی، وقتکشی، وادادگی، نق زدن، به هم ریختن بی شدن به شکلی جبران ناپذیر تخریب کردن و به صورتی خوف به عادت زیستن تسلیم شدن اصل وقتی زندگیمون را به یک حفره سیاه بسیار گود تبدیل کردیم نباید انتظار داشته باشیم که در ته این حفره عشق مشغول پای کوبی و شادمانی باشد زمان هر حفره ای را که بیابد با مایعی بدرنگ و بدبو پر می کند. آن وقت روزگاری می رسد که تو میبینی دیدی که همه چیز زیر سلطه زمان است و تو دیگر نیستی. به ابزار بی در دست زمان تبدیل شده ای. زمانی که با تهاجمش همیشه حسرت را تبلیغ می کند. حسرت به خاطر گذشته های باز نیامدنی را. زمان دروغ میگوید اصل. حرف زمان را باور مکن، زمان را باور مکن این بسته چیست؟ وسایل خطاطی. مسئله را جدی کردم میدانی؟ ما امت خطیم حالا که دیگر اعلامیه نمی نویسیم، خط بنویسیم چیزی تا این حد زیبا امیق، لطیف، موسیقیایی و ماندگار. گمان نمیبرم در جهان چیزی به اندازه انواع خطهای ما برخوردار از زیبایی خالص معنوی باشد حالا تو خیال میکنی امشب که شروع کردی فردا استاد احسایی میشوی نه اما ده سال بعد برای خودم استادی هستم فقط ده سال بعد و اگر امشب شروع نکنم از آن بر یک شب عقب میافتم و قیمت نهایی وقت را آن بر خط معین می کنند، نه این بر. پس به جای این که این همه شعار بدهی، بنشین بنویس. به یک مکتب خطاطی هم رفتم. استاد احوین مرا هفته یک ساعت پذیرفته است. بار کلا به هر دوی شما. بنویس. وقت خفتن است. اصل همه چیز خوب است. در نزدیکی ما بله. اما در دور دست، نمیدانم، یک شب تا دم صبح در باب هدف زیستن گفتگو خواهیم کرد دیگر هیچ معجزهی در کار نیست اینک تو آرام و بیدقدق خفتهی و باد آواز میخواند. باد انگار که ستاره ها را جابجا به جا می کند. باد دریا را زنده می کند. درختان را چمن را گندمزارها را باد وقتی لت در بازی را به لت در بسته می کوبد ای را می لرزاند گلدانی را می اندازد در دهلیزی می پیچد خبر از حرکت در بی زمانی می دهد تو باید باد برف باران آفتاب درختان چشمه ها کوه‌ها و همه بوتهای خار را دوست داشته باشی تا زندگی را دوست داشته باشی تا عشق را